اصر دارم به شکل وسواس گونه ای ایمیل امو چک می اما هنوز هیچ خبری از تام نیست. قبل از اختراع ایمیل و تلفن و موبایل و این جور چیزها زندگی برای آدم های و حسود خیلی بهتر راحت تر بوده. قبل از تمام این چیزای الکترونیکی و رد پای مونده توی های امروز تقریباً هیچی در مورد میگان وجود نداشت. مطالب مثل قبل نبود. صفحات اول به بحران سیاسی ترکیه اختصاص داشت. دخت 14 ساله ای توی ویگان با چکش سگشو لح کرده بود تیم ملی فوتبال انگلستان به شکل تحقی مقابل موننتنگ رو باخته بود. مگان فراموش شده بود و فقط یه هفته است که گم شده. کتی برای نهار دعوت هم کرد بریم بیرون اون آخر هفته رو آزاد بود چون دیمین رفته بود مادرش رو تو بیم ببینه کتی دعوت نشده بود تقریبا دو سالی می شد که با هم میگه آشنا شده بودن و کتی هنوز مادر دمی رو ندیده بود. ما رفتیم گیرافه که تو خیابون اصلی بود یکی از جاهایی که من ازش نفرت دارم. باید بشینی وسط سالانی که از پنج طرفش صدای جیغ جیغ میاد. کتی همش سینجینم میگد راجب اینکه چیکارا میکنم. کنجکاف بود بدون دیشب کجا بودم. ازم پرسید با کسی قرار داشتی؟ تو چشش برق امید بود. این قشنگ حس میشد. یه جوری گفتم آره چون حقیقت داشت اما دروغ تر بود. بهش گفتم با یه مرکز ترک الکال تو دیدار داشتم. خجارت زده چشم دوخ به آبکی آبکه یونانی شد. به نظرم می رسید که یه ذره تو تصمیم چل شدی روز جمعه. گفتم آره خب کار ساده ای نیست کتی. و احساس وحشت کردم. به نظرم رسید کاملا مراقبه اینی که من خوشی یا نه. اما دارم بهتر میشم اگه به من نیاز داریم می دونیم. من بات میام. گفتم نه توی مرحله ولی ازت ممنونم. خب شاید ما بتونیم با هم یه کاری بکنیم مثلا بریم باشگاه با هم دیگه ورزش کنیم <تصفيق> من خندیدم اما وقتی فهمیدم حرفش جدیه گفتم بهش فکر میکنم بعدش پاشد رفت دمین زنگ زد و گفت داره از پیش مادرش برمیگرده برای همین اون رفت دنبالش من فکر یه چیزی بهش بگم مثلا این که چرا هر وقت زنگ میزنه میری سراغش؟ اما اصلا موقعیت خوبی نبود که بخوام نصیحت دوستانهی بکنم یا هر نصیحتی کلا هر چیزی که بهم این حسو بده که باید یه نوشیدنی بخورم از وقتی تو گیرافه نشستیم و پیش خدمت با پیشبند لکش پرسید پرسیدی لیوان شراب می‌خویم و کتی خیلی محکم گفت نه ممنون دارم بهش فکر میکنم سعی کردم این حسو از ذهنم دور کنم یه ذره پوستم مرمور شد که با افکار مثبت این حسو از خودم دور کردم این نکن تو واقعا خوبی داشتم آماده می شدم برم که گوشیم زنگ می خوره. این تامه حالا باید تام باشه گوشی رو از کیفم می و در حالی که قلبم مثل تبل می به صفحه نمایشگرش خیره میشم. الو سکوت ایجات میشه برای همین می پرسم همیشه خوبه؟ بعد از چند لحظه مکس اسکات میگه. گه بله خوبه من خوبم من فقط زنگ زدم به خاطر دیروز ازتون تشکر کنم به خاطر وقتی که گذاشتین تا اون مسئله رو بهم بگین این خیلی خوبه نیازی نیست مزایمتون شدم نه نه وقت خوبیه باز اون برای خط سکوت برقرار میشه برای همه میگم خوبه شما چیزی شده با پلیس حرف زدین افسر رابط خانواده امروز اصر اینجا بود خب تند میزنه کاراگاه گروبان ریلی من بهش قضیه کمال ابتایکو گفتم بهش گفتم ممکنه این همون فردی باشه که حرفشو میزنیم دهنم کاملا خشک شده گفتین شما به اون گفتین که با من حرف زدین؟ نه نه نگفتم اما فکر کردم شاید نمیدونم فکر کردم شاید بهتر باشه که از طرف خودم مطرح کنم گفتم دروغ گفتم میدونم اما گفتم که مغز خودم رو به کار انداختم تا به همچین فکر موفقیت آمیزی رسیدم و فکر کردم ممکنه این بهای حرف زدنش با اون روان درمانگر بوده باشه گفتم که من از قبلم نگرانیایی راجع به روابطشون داشتم نفسم دوباره بالا میاد ازش میپرسم خب بهتون چی گفت؟ گفت با اون مرد حرف زدن اما بازم این این کارو میکنن یه عالمه سوال ازم پرسید که چرا قبلا اینو نگفته بودم و خب اون نمیدونستم خب چی باید بگم حقیقتو بهش نگفته بودم فکر میکردم طرف منو بگیره اما تمام وقت احساس میکردم انگار داره تجسس میکنه انگار سعیدش مشه منو بگیره از اینکه دیگه دوستش نداره دارم مثل احمقا کیف میکنم از اینکه چیز دیگه بین ما مشترکه موضوع دیگه ای ما رو به هم متصل میکنه من فقط میخواستم از شما تشکر کنم برای پاپیش گذاشتن. در واقع عجیب به نظر میرسه اما حرف زدن با کسی برام خوب بود. با یکی که من بهش نزدیک نیستم. احساس میکنم میتونم معقولانه تر فکر کنم اینجوری. بعد از اینکه شما رفتی نشستم به اولین باری که مگان رفته بود پیش اون ابدایک فکر کردم به اینکه وقتی برگشت چجوری بود. چیزی تو وجودش عوض شده بود. یه جورایی سبق بود. نفس عمیقی کشیدم. نمیدونم شاید اینجور تصور میکنم. منم هم دیروز همین حسو داشتم. الان چیز زیادی نگفته. زنگ زده که فقط یه چیزی گفته باشه. فهمیدم کارم انعکاس داشته و از این مبت خوشحالم. خوشحالم که به دردش خوردم. میگه؟ دوباره تمام روز و صرف بازرسی چیزمیزایی مگان کردم. قبلا اتاقمونو گشته بودم. تمام خونه رو. نصفی از شبان روزم صرف این کار شده. دنبال چیزی گشتن. هر چیزی که بتونه بهم به از جایی که میتونه باشه سرنخی بده. چیزی از اون مرد شاید، اما هیچ نیست. نه ایمیلی نه نامه‌ای، هیچی فکر کردم باهاش تماس بگیرم، اما مطبش امروز تعطیله و شماره موبایلش هم نمیتونم پیدا کنم. میپرسم، به نظرتون این فکر خوبیه؟ منظورم اینه که فکر نمیکنین بهتر باشه تماس با اون به اونو بزنیم به حوطه پلیس؟ من نمیخواستم اینو با صدای بلند بگم، اما هر دمون باید بهش فکر کنیم که این برای اسکات خطرناکه یا لاقل ممکنه طرف آدم خطرناکی باشه. نمیدونم. هیچ نمیدونم. یه جور درماندگی توی صداش هست که شنیدنش دردناکه و باعث میشه برام راحت نباشه این پیشنهادو بش بدم. میتونم صدای نفسش رو از اون طرف خط بشنوم. نفسای کوتاه و تند انگار که ترسیده باشه. میخوام ازش بپرسم کسی اونجا پیششه اما نمیتونم به نظر کار اشتباهی میاد اونم مقدمه میگه شوهر سابق شما رو امروز دیدم با این حرف احساس میکنم مواید دستم سیخ شد آه. بله داشتم رفتم روزنامه بگیرم که تو خیابون دیدمش ازم پرسی تماشی خوبه و این که خبر تازه ای نشده من تکرار میکنم آه. چون این تمام چیزی که میتونم بگم کلمهی به زبونم نمیاد من نمیخوام اون با تام حرف بزنه. تام میدونه که من مگان هیپ ولون نمیشناسم. تام میدونه اون شبیه که مگان ناپدید شد من بل نینگ بودم. من از شما چیزی نگفتم. نگفتم. میدونین از گفتنش مطمئن نبودم. خب نه منم فکر نمی کنم باید میگفتی. نمیدونم شاید ناشیانه باشه. البته. بعدش یه سکوت طولانی ایجاد میشه. من منتظرم تا زبان قلبم کند بشه. حس میکنم داره حلقشو درمیاره اما بعدش میگه یعنی اون واقعا راجب من هیچ حرفی نزد میگم البته البته که حرف زد منظورم اینه که ما اونقدرها حرف نزدیم اما اما شما اومدین خونه ما مگان راحت کسی رو به خونه دعوت نمیکنه اون واقعا تو حریم شخصیشه محافظ فضای خودمون من دوماری دلیل می آرزو میکنم که ای کاش هرگز نگفته بودم رفتم خونهشون من فقط اومدم یه کتاب قرض بگیرم واقعا حرفم باور نمیکنه. مگان میگان کتاب نبوده فکرم میره رو خونه با این که اونجا هیچ قفسه کتابی وجود نداشت چجور شیزایی میگفت راجب من خب و اون خیلی خوشحال بود با شما منظورمه یعنی که راجب رابطت خیلی خوشحال بود در حالی که دارم حرف میزنم متوجه این میشم که این عجیب به نظر میاد که نمیتونم واضح حرف بزنم بنابراین سعی بده. اون صادق بود با شما من خودم ایام واقعا سختی رو توی ازدواجم گذروندم برای همین فکر میکنم این یه جور مقایسه و همسنجی بود چون وقتی از شما حرف میزد چشمش برق میزد. چه کلیشه افتضاحی به نظر نمیاد به گافی که دادم توجه کرده باشه. صداش مشتاق به نظر رسه واقعا اینجوری بود خیلی خوبه که این رو مکس میکنه و من میتونم صدای نفسش رو بشنوم سریع و کم عمق از اون طرف خط میگه همون شبی که رفت همون شبی که رفت ما یه بحث وحشتناک با هم دیگه داشتیم بیزارم از اینکه فکر کنم اون از من عصبانی شده وقتی که ادامه نمیده میگم مطمئنم عصبانیتش از شما زیاد طول نکشیده زن و شوهرها دعوا میکنن زن و شوهرها همیشه دعوا میکنن اما این بد بود. وحشتناک بود و من نمیتونم. احساس میکنم انگار نمیتونم به کسی بگم. چون اگه بگم اونا به مثل مقصر نگاه میکنن. حالا صداش کیفیت متفاوتی داشت. جن زده و پر از حس گناه. یادم نیست چطور شروع شد. و بلافاصله من حرفش رو باور میکنم. اما بعدش به تمام بحثی که فراموش کردن فکر میکنم و زمانم گاز میگیرم. اون موقع... خیلی زیاد عصبانی بودیم من خیلی خیلی باش نمهربون بودم من،, من یه حروم زاده بودم یه زاده واقعی اون واقعا ناراحت بود رفت طبقه بالا و یه سری چیز میز گذاشت توی یکیف نمیدونستم دقیقا چی اما بعدا فهمیدم که مصفاکش رو برداشته برای همین فکر کردم نقشه کشیده نیتونه خیال کردم فکر کردم قرار شب بره پیش تارا حالا یکم زودتر داره میره فقط برای یه شب مثل این نبود که داره برای همیشه میره اون میگه من نرفتم دنبالش که برش گردونم. و این حرف دوباره به من نهیب میزنه که در واقع با من حرف نمیزنه داره اعتراف میکنه اون یه طرف اتقه که اعترافه و من طرف دیگه بدون رو در رویی بدون که ببینیم من فقط گذاشتم بره شنبه شب بود؟ بله آخرین باری بود که دیدمش یه شاهدی هست که اونو دیده یا زنی متناسب با توصیف اون که داشته به سمت ایستگاه ویتنی میرفته حوالی ساعت 7:30 من خودم از طریق های روزنامه فهمیدم این آخرین باریه که دیده شده هیچ کس یادش نیست که توی های زیر گذر دیده بشه توی قطار هیچ دوربین مداربسته توی ویتنی نیست حتی توی کلیم تصویری ازش توی دوربین‌های مداربسته دیده نشده هرچن طبق نظر گذارش ها نشدن تصویر توی دوربین مداربسته مدار بسته به این معنی نیست که اون اونجا نبوده چون نقاط کور مهمی توی ایزگاه هست ازش میپرسم کیسای سعی کردیم باش تنبست بگیرین سکوت طولانی دیگه ای ها میشه من من رفتم بار بار روز بلد این درست گوشه میدون توی کینگلی رود نیاز داشتم خودم آروم کنم که هلم داغ شده بود دوتا پیمونه نیم بعدش برگشتم خونه درست قبل از ده بود امیدوار بودم که آروم شده و برگشته باشه اما نیماده بود بنابراین وقتی شما سعی کردین بهش زنگ بزنین حدود ساعت ده بود؟ نه صداش حالا یه ذره بیشتر نچگونه شده من زنگ نزدم. تو خونم دوتا تا بهجو خوردم تلویزیون تماشا کردم بعدش رفتم بخوابم. به تمام جر و بحثایی که با تام داشتم فکر میکنم. همه چیزای چیزهای وحشتناکی که میگفتم بعد از اینکه زیادی مینوشیدم همه ی بیرون تو خیابون سرش داد زدن اینکه بهش میگفتم دیگه اصلا نمیخوام چشمم بهش بیفته اون همیشه به هم زنگ میزد همیشه با هم حرف میزد با چرب زبوری من برمیگردن خونه میدونین من فقط توی تا تارا تجسمش میکردم در حال حرف زدن راجع به چیز انی که من هستم برای همین از زنگ زدن منصرف شدم اون از زنگ زدن منصرف شده به نظر سنگ دلانه و غیر مسئولانه میاد و من تجرب نمیکنم کنم که این داستان رو به کسی دیگه این نگفته باشه تجرب میکنم اگه به کسی گفته باشه در هر صورت این اون اسکاتی که می میکردم نیست اسکاتی که من میشناختم کسی که پشت مگان تو تراس میستاد و دستای بزرگش رو روی های استخونی اون میذاشت آماده بود برای محافظت کردن از اون در مقابل هر چیزی. من آمادم که گوشی رو بذارم اما اسکات به حرف زدن ادامه میده. زود از خواب بیدار شدم هیچ پیغامی روی گوشیم نبود. وحشت نکردم. فرض کردم با تاراس و هنوز ازم اصابانیه. بهش زنگ زدم و براش پیغام صوتی فرستادم اما هنوزم وحشت نکرده بودم. فکر کردم احتمالاً هنوز خوابه یا فقط تم و کرد. نتونستم شبم تارا رو پیدا کنم اما آدرسش رو داشتم. کارت ویزیتش رو میزه مغام بود. برای همین پا شدم و یک کله تا اونجا روندم. می می‌کنم اگه نگران نبوده چرا احساس کرده باید بره تارا. اما حرفش رو قطع نمی‌کنم، میذارم ادامه بده. یکم بعد از نه رسیدم در خونه‌ی تارا. وقتی در باز کرد واقعاً از دیدنم تعجب کرده بود. کاملاً واضح بود که من آخرین کسی بودم که انتظار داشت اون وقت صبح در خونه‌اش ببینم. اینجا بود که فهمیدم مگان اونجا نبوده و شروع کردم به فکر کردن شروع کردم به شروع ها رو تو هوا میگرفتم. من برای تردیدش احساس تعصف می کردم اون بهم گفت آخرین باری که مگان رو دیده تو کلاس یوگا بوده جمعه شب اینجا بود که دچار وحشت شدم بعد از اینکه گوشی رو قطع میکنم به کل ماجرا فکر کنم اگه آدم نمیشناختهش اگه آدم ندیده بود که چه چیوری باش رفتار میکرد، اونجور که من دیدم و خیلی از این چیزایی که میگفت نمیتونست کاملا رنگ حقیقت داشته باشه دوشنبه 22 جولای 2013 صبح کاملا گیج بودم انگار یه ذره خوابم برده بود اما یه خواب شلوخ بلوغ در هم درهم بر برهم برای همین صبح برای بیدار شدن از همچین خوابی تقلا میکردم دوباره هوا گرم شد و امروز واگن است. با اینکه همچنین پرام هم نیست. امروز صبح دیر کردم و وقت گرفتن روزنامه نبود یا اینکه بخوام اخبار اینترنت رو چک قبل از اینکه از خونه بزنم بیرون، برای همین دارم سعی میکنم با گوشیم سایت بی بی سی رو بگیرم اما نمی‌دونم چرا اصلا لود نمیشه. توی نورسکود مردی سوار میشه که آیپد داره و میشینه کنار دستم. اون برای گرفتن اخبار هیچ مشکلی نداره سایت دیلی تلگرافو باز میکنه. اونجا تو گزینه سفون با خط درشت و پررنگ نوشته شده مردی در ارتباط با ناپدید شدن مگان هیبل دستگیر شد اونقدر حولم که دست باچه و بیتوجه و گردن میکشن تا بیشتر ببینه. مرد بهم نگاه میکنه توهی آمیز تقریبا مبهود میگم متاسفم من اونو میشناسم زنی که گم شده من, من میشناسمش میگه آه چه وحشتناک یه مرد میانسال سال خوش و خوب صحبت صحب میخوایین ماجرا رو بخونین؟ لطف میکنین نمیتونم با گوشیم هیچ جا رو بگیرم. مهربانانه بهم لبخند میزنه و آیپدش رو میده دستم. سطر بالا رو لمس میکنم و صفحه مربوط بهش باز میشه. مردی حدودن سی تا چهل ساله در ارتباط با ناپدید شدن مگان هیپفل بیست و نه سال اهل ویدنی که از شنبه شب 13 جولای گم شده دستگیر شده است. پلیس موافق اعلام این نکته نیست که آیا مرد دستگیر شده شوهر مگان هیپل، اسکات هیپل است که روز جمعه با هشیاری پلیس مورد بازجوی قرار گرفت یا نه. امروز صبح در اظهار نظری یک سخنگوی پلیس گفت: ما تایید میکنیم که مردی را در ارتباط با ناپدید شدن مگان هیپل دستگیر کردیم. او هنوز به جرمی متهم نشده است. جستجو برای مگان ادامه دارد و ما در جستجوی سرنخی هستیم که معتقدیم ممکن است صحنه جنایت باشد. الان داریم از جلوی اون خونه رد میشیم برای اولین بار قطار رو علامت قرمز توقف نمیکنه تو اون دو سری سر میچرخونم اما خیلی دیر شده رد شدیم ازش دستام میلحظه وقتی که آیپد و برمیگردونم به صاحبش. اون با ناراحتی سر تکو میده میگه خیلی متاسفم میگم اون زنده است. صدام خوشکه و حتی خودم هم باورش ندارم اشک تو چشم حلقه میزنه من توی خونهش بودم من اونجا بودم نشسته بودم پشت میز خونش به چشمش نگاه کردم چیزی احساس کردم من به اون دستای بزرگ و کاری که ازشون برمی اومد اگه میخواست لهم کنه فکر کردم اون میتونست منو نابود کنه چه برسه به مگان شکننده و نرم و نازکو جیغ ترمز توی اسکای ویتنی بالا همیشه من از جو می پرم. باید برم اینو به مردی میگم که کنارم وو داره کمی شگفت زده نگاه میکنه اما اقلانه سر تکون میده و میگه موفق باشی می هم سمت خروجی و از پله میرم پایین. راحتم عکس جریان حرکت مردمه. تقریبا پایین پلها که سکندنی میخورم. مردی بهم به میگه: "جلوتا نگاه." بهش نگاه نمی کنم. چون دارم به لبه پله سنگی نگاه میکنم. کنم. پله دوم از آخر. یه لکه خون روشه. موندم این لکه از کی اینجا بوده؟ مال هفته قبله؟ ممکنه خونه من باشه؟ یه خونم ممکنه خونش قاطی همین خون باشه؟ گیج شدم. اینجوری اون مرد رو دستگیر کردن سعی میکنم آشباز رو رسم کنم. اتاق نشیمن و خونه خیلی تمیز بود. بوی زده و میداد. بوی ماده سفید کنده بود؟ نمیدونم. الان نمیتونم به خاطر بیارم. فقط عرق روی پشتش و بوی آب نفسش به وضوح یادمه. دوون دوون از زیر گذر رد میشم. کنار جاده بلن باز طلو میخورم. در حالی که تونتون تون توی پیاده رو را میرم نفسم حبسه سرم پایینه اونقدر وحشت زدم که نمیتونم بالا رو نگاه کنم اما وقتی میرسم اونجا هیچی برای دیدن نیست هیچ ونی بیرون خونه اسکات پارک نشده هیچ ماشین پلیسی نیست یعنی جستجوی خونه رو تموم کردند اگه چیزی پیدا کرده بودن هنوز اونجا بوده حتما باید ساعت گذشته باشه هرچی بود از بین رفته شواهد آهستم میگیره وقتی میرسم دم در خونش مکس میکنم و نفس عمیقی میکشم. پرده‌ها رو کشیدم. هر دو طبقه بالا و پایین و کیپ تا کیپ نگاه میکنم و میرم سمت در. دستم بالا میره. من نباید اینجا باشم. نمیدونم دارم چیکار میکنم. فقط می‌خواستم ببینم، میخواستم بدونم. برای یه لحظه بین عمل خلاف غریزه و برگشتن و رفتن از یه طرف و در زدن از طرف دیگه گیر میافتم. برمیگردم که برم و درست در همین لحظه در باز میشه. قبل از این بتونم تکون بخورم دستش تند و چاپک میاد بیرون بازمو چی میزنه و من رو میکشه سمت خودش دهنش خط ترس ناکه چشش وحشی اون چیزی برای از دست دادن نداره غرق ترس و هیجان تاریخی رو پیش رو میبینم دهنم رو باز میکنم تو فریاد بزنم اما خیلی دیره به شدت منو میکشه توی خونه و در شطررمشم